بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و الی و صحبیه اجمعین اما بعد مو قبل از اینکه بریم به بحث نواخذ اسلام تالیف امام محمد بهاء نیاز به مقدمه داریم من فکر کردم که که سخنی که میزنم مجرد سخنرانی نباشه گفته هایی که میاریم اون حرفایی که بهش استناد میکنیم استدلال میکنیم از خود کتاب ها و مستند باشه اینطوری نباشه که هر کسی مثلا از ذهن خودش یک حرفی را بزنه بدون اینکه مدرک روش داشته باشه سعی می‌کنیم ان شاءالله حرفامون با مدرک باشه از قرآن و سنت ما قبل از اینکه وارد وقت تکفیر بشیم مساله تکفیر یک مسئله دنیوی نیست که مثلا بالعکس ما بخوایم در اون از متخصفین اهل دنیا استفاده کنیم از نظر فیزیک و شیمی بخوام استفاده بکنیم مساله تکفیر یک امر شرعی هست و مسائل شرعی را انسان از قرآن و سنت میگیره در مسائل شرعی ما ممنوعین از اینکه حرف بزنیم از آراء خودمون، الا تخدموا علی تلک به علم مسئله‌ای که علم بهش نداری از مسائل علوم شرعی نباید در موردش صحبت بکنی. همین که حرم ربی الفواحش ما ظهرا منها و ما بطنا خدا فواحش حرام کرده و تقول علی الله ما لا تعلمون. تقابل بر داشته باشه در چیزی که نمیدونه. کافر رو خدا مشخص می‌کنه کی کافر رکی مشرکه خدا فقط مشخص می‌کنه چه کسی وارد اسلام میشه بچا چه چیزی وارد اسلام میشه و چگونه اسلام, اسلام ازش گرفته میشه اجتهادی نیست شخصی نیست نذ نز... سلیقه‌ای نیست که ما بخوام بسار نظر بکنیم و همچنین خداوند در قرآن می بیاد تو انت نزعتن فی الله والرسول اگه تنازوت عادی ما تنازوت مبینین در بین مسلمان ها در مسئله تکفیر شیعه ما را تکفیر میکنه ما هم شاید خیلی از ما شیعه رو تکفیر بکنه یا فرقه هایی که در داخل اهل سنتان خودشون تئوری میکنن اشاعره معتزله رو تئوری میکنن معتزله اشاعره رو تئوری میکنن اشاعره معتزله ماتریدی همه متفقن در تکفیر سلف اون میاد بحثشون اون همین جا ما این اختلافات هست در تئوری هر کدوم دیگری فرقه و گروه دیگری رو تئوری میکنن نه اینکه الان من گفتم من نمیدونم سوخرانی میکنن مستند بیارم از کتاب ها از از مصادر هر گروه هر فرقه هر کسی که اون حرف وزه سعی میکنم مستند از کتاباشون بیارم و ما در اون تناوع و اون طلافاتیکی میشه و زیفه هست که به پرآ و سنت هر کدوم موافق پرآ و سنت رو سر و چشم شاید من اینجا آمل دارم اشتباه میکنم. و این جمع شاید وسیله باشه در هدایت من ما و جوون عادله ای که مرسید اون فهم می ما داشتن سعی میکنیم که حرف و سخن عه بالا ما اون استنبات و استال که داشتن سعی میکنیم که اینجا بگیرن اما اون شافی رویم حرف جالبه میزنه میگه که و يجعل الله لا احد بعد الرسول یقول الا من جهه علم ما قبلها الا تاخر سفاتش یی کی کسی حق نداره الا خلاصه کلامش مینواساره کلامش حق نداره نصوص قران و سنت را بازیچه دست خودش قرار بده بدون اینکه ادوات علم شرعی رو داشته باشه از علم ناسق و منسوخ علم اصول فقه از مطلق و مقیدش از عام خاصش علم لغت عرب همینجوری نیست که هر بیاد از قران یک مطلبی را بگیره بگه این دلیل بر مسئله فلانیه هر شخصی نمیتونه بیاد از قران و سنت بدون اینکه این مسائلی که بهش اشاره شد از علوم شرعی آگاهی علوم اله رو داشته باشه چطور یک شخص اعجمیه هنوز از لغت عرب چیزی نمیدونه میخواد بیاد به قران استناد بکنه و استدلال بکنه وقتی که نمیتفهمه اقیم الصلاه یعنی چی باید اون آگاهی نسبت به عرب داشته باشه تا باید بکنه باید نسبت به ناسخ و منسوخ عام یه جایی یه قایده عامه یه جایی آیه آیه خاص چطور جنب ببندین بین فرموده خداوند انک لا تهدی من احباب وانک لا تهدی الى صراط المستقيم جایی میگه تو هدایت میدی به پیامبران اسلام میگه مسیر صراط مستقیم جایی میگه اون کسی که دوست داری هدایت نمیدی اونجا میگه هدایت میری ببندین این تخصص علماست کار علماست که اومدن زحمت کشیدن و کتابای تفسیر نوشتن کتابای فقه نوشتن و اون چیزی که مهمه این مسئله که الان ما داریم میخونیم یک مسئله ازمندرابردی نیست مثلا الان ما در بحث تکفیر کتاب نواقض اسلام رو داریم یک از کتابی که محمد وهاب نوشته در نواقض اسلامی اون چیزی که اسلام رو میشکنه اسلام رو نابود میکنه خب محبد وهاب این کتاب رو نوشت و این کتاب محبد وهاب و دیگر کتاباتش سبب شد که اصحاب فرقه های مختلفیان موقف ازش بگیرن خیلی ها گصه خانه و بی اومدن کتاب نوشتن در تفسیر محمد وهاب و در این که محمد وهاب رأس فكره تکفیره فكره تفیری رو مرجعیتش به محمد وهاب میدن و به کسانی که کتابهای محمد وهاب رو بررثی میکنن میکنه یا کتابهای ابن تیمیه حالا ما از گفته های خود ابن اینجا خواهیم گفت آیا ابن تیمیه یا نه آیا محمد وهاب است یا نه تکفیر کردن کی رو تکفیر کردن و چطور تکفیر از گفته های خودشون از گفته های خود این ائمه نما بکنیم ما فقط یک چیز ما بگیم اهل سنت اون 4 تا مذهبی که توشون هستن از شافعیه و حنفیه و مالکیه و حنابله تا فیه جدا نیستن همشون یک ایده دارن یک اعتقاد دارن با اونم اینکه مرجعیت قرآن و سنت به اتفاق عمو تو ما البانی در کتاب صفه الصرا در مقدمش میگه تمامی این اتفاق دارن در اینکه اگر قولی اومد از قرآن از سنت از سنت صحیح برخلاف مذهبشون قولشون قولشون رو بزنن به دیوار این دیگه محل اتفاقه به خاطر همین اینها این ها اصحاب این چهار مذهب هیچ اختلافی با هم در اصول نداشتند شاید در فروع به یکی دلیل رسیده باشه به دیگری رسیده نباشه و با, با هم اختلاف نظر داشته اینها ائمه اهل سنتند امام ابوموسی متخرج از مدرسه حنابله است محمدوها هم, هم اینطور اینها یک گروهی یک دسته یک باندی، یک فرقه جدا از اهل سنت نیستند اینو من فقط در مقدم بگم کسانی اومدن اینها را از اهل سنت جدا بکنن مثل مثلا حسام فرهام مالکی داریم که اینجا در این کتاب دعوت المحمدبه ها بر این کتاب شیخ ربیع مثلی میاد جوابش میده و خیلی از ائمه اینجا تخریزش میکنن تاییدش میکنن مثل صالح فوزان و شیخ نجمی و و شیخ زید مدخلی و دیگر ائمه چیه بحث این کتاب بحث این کتاب تهمت ها و اتهامات هست که امثال حسن مالکی حسن فرهام مالکی و یا این جفری و نمیدونم امثال اینها از سران تصوف سران اشاعر و معاوله میان اتهام وارد میکنن به عقیده سلف که اینها تکفیری هست و منشأ فکر تکفیری در عصر حاضر اینا بوده یک قسمت بحث ما برایت این اعیمه هست از این فکر از این اتحام از این تهمت این تهمت محضر من وقت نیست که مثلا بخوام از کتاب خودش بخونم از اون مطالب کتاب اون مالکی چون کتابش هم ترجمه شده به زبان فارسی و متداوله خیلی ها خوشحالن از اینکه یکی به اسم اهل سنت میاد، یکی از های اهل سنت رو اینجنین از رده ای اسلام خارج میکنه و تهمت تکفیری بودن و یک فرقه جدا از اهل سنت رو بهش میزنه. علاوه کردن چی گفتم الان اگه زودتر میومدیم شاید مطالب از از اون اتهامات میخوندیم ولی خب وقت نیست. بحث تکفیر یک بحثی همونطور که در نواقص اسلام محتوها هدفش بوده اشاره بهش میکنه. این است که بحث تففیر یک مساله جدا از کتابای فقهی نیست اون چیزی که در حادیث به ششاره شده یک مطلب جدیدی نیست یعنی بحث تفسیر ما باز اگر بکنیم کتابای فقهی مثلا کتاب فقه باز میکنید باب احکام المرتد شما برید بکنید ابوابی هست در کتابای فقه احکام مرتد مرتد چیه کسی که کافر میشه و کفر را بر خودش می بزنده و میاد بر علیه السلام سخن میگه خیلی ها بودن اومدن ابتدا در دفع از اسلام نوشتن و بعدا برگشتن از اسلام بشون و بر علیه حساب مثل عبد الله قسیمی کتابو نویشه در کتابه توحید نوشته ولی که بعدا مرتد شده زنديق شده و بر اسلام کتاب نوشته بر اسلام و سلمانا پس بحث تکفیر یکی از مباحث کتابای فقیه بحث جدیدی نیست این تکفیر یا به حق یا بناحق یا به حق یا بناحق ما در خود حدیث هم دارن که الله صلی الله به إن بحث إشارة ميكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان أي ممرأ قال لأخي يا كافر فقد بأ به أحدهما إن كان كما قال أو رجعت عليه على كثير مؤمني برادر مؤمني خودش بقى أي كافر يا إنك ان كافر حقيقة إن كان كما قال يا إنك بوقعان ان, ان كافر تكفير الحق إلا رجعت عليه يا إنك ان تكفير بخودش برمجرده اون شخص مؤمن کافر نیست تکفیر به خودش بس تکفیر یا حق همونطوری که رسول الله صلی الله علیه قال یا انک تکفیرش حقه یا انکه تکفیرش و به حال اگر کسی تکفیر کرد حاکمی عالمی شخصی نیست حکم اون گفت الا رجعت علی یعنی شخص کافر یان که حال من گفتم شخص مؤمنی گفتم تو کافری اون شخص کافر نبود IS is a Tribal, of everything else,рамad inательно that the smoked под behaviours wanna do the shame or the 낮 days us! Also Ayla Sunnis, as we mentioned here, There are Auss biography of the past few about this from original resud is that some relatives Al bleند said they do the Мосgfol the Most Highs of the Praise were saying an analysis on the image. But some Mother,ocracy no 올� thehua the Prophet said anybody who is saying שא�un, that all of somebody و من قتل نفسه بشيء في الدنيا تاخرت و من رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتل قاتل غنایه کبیره رسول الله عز و جل میفرماید و من مؤمنا بکفر کسی که مؤمنی رو تکفیر بکنه بگه یک کافر مثل قتل قتل داره و قتل هم گناهی کبیره بهش استناد شده در اینکه کسی که تکفیر میکنه کفری که از غَرنا کفر اکبر، باز اسلام خارج نمیشه. یعنی کسی حکم تکفیر خوارج نداده. فکر تکفیری از کی از زمان رسول الله صلی الله علیه و وقتی که ذوالکبیره تیمی هم در حدیث، حدیث صحیح بخاری، وقتی که ذوالکبیره تیمی جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد اتق الله. بعد رسول الله در جوابی که من یتق الله این عصایتو کید تقوی خدا دار اگر من عصیانش بکنم چرا میگیم اینجا جا ابتداید فکر تکفیری بود؟ در روایت دیگه در صحیح بخاری بازم داریم که بگیم یا رسول الله اعدل قال و من یعدل و من یعدل لم اعدل ما در وقتی که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داشت غنایم رو تحسیم می کرد انسارم راضی نبودن بلی که اومد رسول باهاشون صحبت کرد انصار و اعتراض بر شهر نداشتن جای تعجب بوده چرا رسول در این کارو میکنه به قریش نمیدونم به این سران قریش داره میده به ما نمیده براش محل اشکال بود رسول بهشون توضیح داد با اونها راضی شدن ولی این شخص اومد با کمال گستاخی به اینکه رسول الله صلی الله علیه و احتمال اشتباه در شعر و اینجا داره اجتهاد میکنه و اشتباه میگه ای رسول خدا عدالت کن رسول اگر من عدالت نکونم کی عدالت میکنه؟ خداوند در قرآن مگه نمیگه؟ و ما اتکوم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. اون چیزی که رسول میگه ادیش بپذیرید. اون چیزی که نهی میکنه ازش پرهیز کنید. رسول خدا ما در حج عمل رسول اون کسی که تاسی میکنه خدا خدا گفت خدا نمیتونید بیاد در الله علیه و آله که مرتبه با وحی اجازه بده بیاد رسول الله صلی الله تصحیح بکنه چون اعلم خلقه کسی نمی‌تونه بیاد برش اعتراض وارد وارد بکنه و بخواد تصحیح بکنه اون کاری که انجام داده رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب خوارج این فکر به وجود اومد این فکر تکفری به وجود اومد تا اینکه در زمان عثمان رضی الله عنه به خاطر مساله دنیا توتیق عبدالله بن سبا یهودی کرد گفت که عثمان رضی الله عنه الان بولتون رو تقاول میکنه میدوزه اختلاف میکنه خارجا روسیه دخترش رو اینقدر اونقدر کرده میاد میاد این توته رو میکنه از مصر اشخاص رو بلند میکنه و عثمان رضی الله عنه بشهادت میرسونه عثمان یا به حق کشته شد یا بنا حق خلیفه مسلمانان عثمان رضی الله عنه یا به حق کشته شد یا بنا حق رسول الله صلی وقتی که روی احد ایستاده بود وقتی در جنگ احد بود چی گفت اوث بوت یا احد فان علیک صدیق و شهیدان دو تا شهید و صدیق روی تو ایستادند ای احد Jetzt, per eine Smile war, wo er das 78 Saint-D Die Frauen wurden dadurch als Ghälislation, die un Professora wer im assimil hatten ko, um die Humana wirdbrauchen. Die Shooting-D tempo waren送 aus der Isnat-Deadien, ob steht samen der Viertelbeam, das nurallas skolk, die Musik der Ahlschule geteint und mit der Um Cryst put und der K ضURério, اون کسانی که اورا به شهادت رسوندن خبره بودن این به اتفاق اهل سنت ولی خب ما کسانی داریم در عصر حاضر که این اشخاص را ستایش کردند ستودند و با وکیل مدافع اون تکفیرهای عصر قدیم بودن کسانی که تو تکفیر مثلا حالا نمیگیم که اتهام وارد بکنیم که از عمد این کارو کردن ولی اهل علم شرعی نبودن مثلا سید خود مثلا بفرض من مثال داره میزنم اینجا بحث تبدیع تفسیق بحث اینکه شخصی را از ازدار اهل سنت خارج میکنیم نیست بحث علمیه. ما کتابها را می کنیمیم مثل کتاب عدالت اجتماعی مثلا میکنیم وقتی که ما بررسی میکنیم می بینیم کتاب را مینی میشه درست سید ق در مراحل فکری متعددی عبور میکنه. ونا من بحث بحثث خود را میکنن بعد به شاره آن کرد چون بحث نقطه مشترک از کجا این ریشه می گیریم این فکر و چطور انسان به انخرابکششانده میشه. اوبال وار ش که تکتفیره به ناحق را ما بفهمی. خوارج نیشه اصلی تکفیر به ناحق بودن که به وجود اومدن کسانی هم متأثری به اینها شدن خب ما کتاب این بنده خدا که می خونیم خدا رحمتش بکنه همونطور که شیخ روی می شیخ روی هم جز کسانی بود که رد بر اون داد هرچند قبل از شیخ روی محمود شاکر و دیگران هم رد داشتن ما گفتیم اینجا بحث بحث انتقام نیست هر کسی نقد میشه. وسم ما جمع ما که ما میگیم ما اهل حدیثیم و مذهب سلف را برگزیدیم ما هیچ وقت عثوانی نمیشیم بگه اینجا شافعی اشتباه کرد اینجا مالک اشتباه کرد هیچ کسی پیرو حدیث نمیشه مگر اینکه سخن رسول الله صلی الله علیه و اسلام کلن یخطئ و نسمتكم من مالک الا صاحب هذا القبر حدیث اومد روایت ما در صدر تش ما میبینیم اینجا قبل از اینکه ما انتقاد وارد بگین قبل از اینکه مثلا از از اهل الحديث بیان کسان انتقاد بکنن به سید خود کسانی مثل یوسف كا قذاوی 40 سال قبل در بحره در اجتماعی که میشه در بحره میاد انتقاد میکنه میگه و رایهو فی المجتمع الاسلامی علی طوال الطاریخ حيث یرا انهم قطع فی عهد خلافا الراشدین و رایهو فی المجتمع الحالی و لا يجد على وجه الارض مجتمع مسلم قبل هیچ مجتمع، هیچ مسلمانی وجود نداره تکویرش یه طرف بحث تکویرش به منی امیه یه طرف مثلا شما مثلا در کتاب رو باز می کنید می بینید که کپی پیستی یعنی کپی برداری کرده از کتاب های مخالفین ما اونایی که اهل سنت نیستن مثل کتاب نهجو بلاغر میاد تهمت هایی که در کتاب نهجو بلاغر بر علیه حسما را دیگران که اختلاص مالی کرده. ده 10000 دینار برداشتة برای عروسی دخترش به دامادش داده و اموال بیت المال رو دزیده اختلاص مالی کرده ابو سفیان رو اونجا تکفیر میکنه معاویه رو اونجا تبیع و تفسیخ میکنه و به عنوان یک منافق حساب میکنه عمرو بن عاص رو میگه منافقه اینها خلاف عقیده اهل سنت اینجا این اظهار نظرها اینجا منشه ریشه تکفیر وجود میاد تکفیر گفتم همون تو که شروع کردم ریشه فكره تکفیری محمد وهاب نبود، ابن تیبیین نبود، هیچیک از اهل سنت نبودن. ریشه فکر تکفیر کسانی بودن از خوارج و بعد از اونها کسانی که ره رو برای خوارج بودن و یا متأثر به فکر خوارج بودن. عیمه اهل سنت هیچ کنون تکفیری نبودن. حتی در عصر حاضر ما ببینیم کسانی که فکر تکفیری دارن شاید گوشه و گناری بیان به ابن تیبیه رحمه الله بیان استناد بکنن. ولی خیلی از گفته ها میاد الا بحث ابن تیمیه خیلی از گفته های ابن تیمیه رو رها میکنه این هست ما باید دقت میکنیم این یک گوشه ما اینجا ما خودمون اهل حدیث ما خودمون علما خودمون تبعی میکنیم و اون کسانی که اون کسانی که تکفیر میکنن مثلا این سایت که من گذاشتم شعارش سایت منبر توشید و جهاد شما اونجا برید توش میخونید مقالات مقالات ترتوسی رو بخونید اما مقالات مقدسی را بکنید، پر از این مقالاتی که در تفسیر ابن باز بن عثیمین البانی و حکام و غیر درش پره یک مقاله و دو مقاله نیست این که البانی جهمی مرجعی حالا این بحث محصور خواهم کرد فقط اینه که ما بگیم این روش روش ما نیست کسانی که خودش رو به تلف می و بعد میان از فی یا از کتاب عدالتش و دیگر کتابات از تفسیر صحابه یا تفسیر مجتمعات نقل میکنن این منهج و منهج ما اهل سنت نیست چه میخواد تصفیه صحابه باشه تفسیق صحابه یا حکم نفاق صحابه این منهج منهج ما اهل سنت نیست اهل سنت از این فکری هست این چیزی در کتابای ما اهل سنت وجود نداره کسانی هم که گفتم اومدن از کتابی مثل نهج البلاغه یا کتابای اباضیه نقل کرده در نقد صحابه و همجینی کسانی که بعدن از صحابه دفاع کرده غیر از این اشخاصی که متاثر به فکر خوار شدن، کسانی دیگه که اهل کلام بودن، بعضا فکر میکنن که یک شرط صاحب طریقتی بشه، دیووندی بشه یا ماتریدی بشه یا اشعری بشه، اونها تکفیر نمیکنن، میگن سلفی‌ها تکفیری هستن. اهل حدیث تکفیریه. ما حضرات تکفیری نیستیم، فکر مت تکفیری ابن تیمیه است. سؤال و کوس تو خیابونام میبینی، شاد تو اعلان و تو رسانه ها و همه جا هم بشنوی که اینا تکفیرن، در صورتی که این تکویر این ایمم و انطلاق خواهیم به بحث شاهد اومد بری هستن از این فکر تاکفیری. مثلا شما این کتاب من دستویقی از اهل کلام از اشعره اهل کلام اشعره و ماترینیه دو تا شاقه از یک فرق و یک گروه هستن که از معتزله جدا شده معتزله قائل بودن که خدا هیچ صفتی نداره خدا مسایب العرش نیست نمیشنود نمیمیند اشاعره و قسمتی را گرفتن هفت و صفه و همچنین معتزدی هفت و صفه اثبات کردن استوا را انکار کردن مثل معتزله ولی صفه علم شنیدن دیدن اینا را برای خدا ثابت کردن هفت و صفت. و سلف را این نقطه شاهده وقتی وجه شا شا ما اینجا از گفته دسوقی مثلا که از اینها در کتاب امبره که نفس کتابش اینجا جو چی میگه میگه اصول کفر سته شش تا اصل از اصول الکفر داریم یکی شش و التمسك في أسول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب واسنة مجرد استدلال بظاهر قرآن وصنة من غير عقضها على البراهين العقلية والقوافع شر stakeholder بدون أرز كادان برقوافع عقل وشرعية إلى أن قال وتمسك في أسول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب واسنة من غير بصيرة في العقل استدلال بظاهر قرآن وصنة بدون أرز كادان برعاقل هو اصل ضلاله الحشبيين او اصول حشبيها يعني سلف واهل حديث حشبيها منظور ان هيكي ظاهرنغر و ان هيكي شيء داخل الاسلام ان يك تناوبوا الالقاب و استهزاء مصدره باهل السنة. فقالوا بالتشبيه والتجسيم وناقال الذين سلف وارد میکنه که اونا به قائل به تشبیه و تجسیم شدن و جه عملا مظاهر قول تعالى على العرش استوا ااین من ثم بالسمع یعنی اشاعره ضمتریدیه کسی همچنین معتزله اگر کسی بگه خدا بر عرش همه جا چیه یکی از نواقض اسلام و ایمان مرتکب شده با سافره اصول الكفر السته. سته اصره. یکی از اصولش استدلال به ظاهره قرآن و سنت مثل اثبات اس اثبات استموا خودش کفر نزد اونها چی هم اینطور مثلا نه اینکه تنها اهل سنت و سلفا تکفیر میکنه اشعاعا هم تکفیر میکنه مثلا مجلسی اتفقت الامامیه علی ان من انکر امام امامتی احد من الائمه وجحد ما وجب الله تعالی له من فرض الطاعه هو کافر ضال مستحق الخلود فی النار کتی امامات 12 دوازده گانه را نپذیره یکی از اون شاخیه کافر و خالد مخلد در جهنم یا اونجایی که مصطفی كتاب تفسير کتاب تفسیر قرآنش میگه میگه هذه شبه ربما اوقعت الاشاعره في الهلکه السوداء والبئر والبئر الظلماء حتى اصبحوا مشركين أو ضاهله العقوله في الدين مشركی اشاعره بحث قضا و قدر رو میکنه بعد میگه اشاعره فرقی با مشکین نداره اونها هم از جمله مشرکینن که در گیر کردن در تاریکی و ظلمات به سر میبرند کفر و شر در قرآن و سنت اینا رو خلاصه‌ بحث تاریخ شده بریم به بحث خود کفر و ضوابط تکفیر و مانع تکفیر ما باید اول خود کفر را بدونیم مراتب کفر را بدونیم تا اینکه بریم به اصل بحثمون کتاب نماقه ایمان یک مقدمه نیاز داریم و اونم بحث ضوابط تکفیر و مانع تکفیر ما اول قبل قضیه کی وارد بحث تکفیر بشیم ما باید به حق بنا هر کفری که در نصوص شریعت میاد دلالت کفر اکبر نمیده مثلا بین اقوه جلی و بین الکف ترک و صلاح بحث شخصی که از باب تحاغون نماز و تدبنه جمهور این ممالک ابو حنیفه و شافعی میگن این کفر از مره نه کفر اکبر امام احمد میگه کفر اکبر حالا بحثش اینجا جای باز کردنش نیست بری ما باید تصورش داشته باشیم هر نسلی در قرآن و سنت میاد که بحث کفت دوشه هست اون کف کفر یا اکبر و اصغر شرک هم میتوری یا اکبر و اصل ادله یک فرموده خداوند انما النسء زیاده در کفر یعنی یکی از انواع خدا خداوند در قرآن الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ذلك لمن یشاء ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک را خدا نمیبخشه شرک اکبر و ذلك دون أول. فإن ترى تقول او راق وضا بريكا يسمى قدمي برش وهم شريعيه رسول الله صل الله عليه وسلم فرميان اخ ان اخّظوا مما اقاف عليكم الشرك الخفي هو الشرك الاسغر قالوا ما هي الرقال الرياض الشرك الأسغار رسول الله صل الله عليه وسلم إن جاء يشرب الشركي ميكون لك انسان رأس اسلام خرج يمكنه غنم رياض وهم شريعيه رسول الله صل الله عليه وسلم يفايث نتاني في الناس هو بهم كفر أقعنوا في النساء بنية حتى على الميت دوشت مردم كفر كف تعند اذا ده کسی و ودومي هم نروخوني اي كسي كنروخوني كافره خير كفرش عبره باتفاق اهل سنت فان كي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرما لا ترجوع بعد كفاره يضرب بعضكم رقابه بعض بعد زمان كافر نشي غدن هم ديگه نذير نذير كسي گدن هم ديگه روزه كافره معاویه رضی الله عنه جنگ با علی بعد آیا معاویه کافر شد یا علی هیچ گناه کبیره است نشی ردهت الدین کفر نیست چرا قفر اکبر نیست چون خداوند اثبات ایمان میکنه برای قاتل و این طایفتان منال مؤمنین اثبات ایمان میدن له من اخيه شيء فمنع في له من اخيه اثبات اخوت میکنه برای قاتل نسبت به مقتول که قاتل برادر کیه مقتول چطور برادرش اگر کافر است اگر قاتل کافر پس چرا برادر مقتوله اینها ادله ها در این که چی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 قبل از اینکه وارد بارد اسلام بیده چیز از اسلام نمیدونست. اومدن به ستونش بسطیه مسجد تا اینکه ایمان آورد برد. قبل از اینکه که چیزی از اسلام بدونه که خدا میگه نمیدونه ولی که به انام قوم اللای علمون در انتهای آیه میگه نمیدونن. قبل از ندونستنش قسمس گذاشت مشرک. چرا؟ چون شر را باور نداشت. هر کسی شرع ما را باور نداشته باشه مسلمان نیست. Кас исломро қаҳм меход, яҳуди бошад, насронии бошад. Ин шахсе ки наметавонем исми исломро ба онш бозорин. Ин бас мина куфр-и тазкиб. куфр-и juhud дорем, куфр-и фараун, муваҷаҳадӯ баҳа ва саиқната анфусуҳум. juhudiyat-и яҳин дош. juhud. шахс мидонад ва juhud мекунад. аз анваъ куфр, куфр-и инад juhud با کفر, با کفر انواد و استقبار دو تا که اینجا بهش اشاره سنه یک فرق جزئی بینشون هست فرعان با زبانش حقیقت قبول نکرد یعنی حاضر نشد خدا را قبول بکنه ولی ابلیس چی؟ خدا را انکار نکرد قال ربی بماغوتنی خدا را قبول لاش به زبانش انکار نکرد خدایی خدا را انکار نکرد سجده به آدم نکرد استقبار کرد ولی فرعان جهود برزید با زبانم حاضر ح خداوند را قبول بکنه این فرق جزئی که بین جحود و استکبار کفر داریم از اون کفر که در نواقض اسلام بشمار میکنه کنه کفر عبادی و ما تاتیه من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین اعراض بی کسانی که نمیخوان از اسلام چیزی بشنونن فاصله میگیرم اصلا نمیخوان یاد به اینکه اون شخصی که نمیاد مدرسه دینی درس بکنه بگیم این معرض خیر معرض منظور اون اعراض مطلقه push دادن مطلقه از انواع کفر كف، شک کفر منافقین و دخل جنته و ظالم لنفسه کفر منافقینی که شاید محمد صلی الله علیه و آله خدا باشه شاید هم نباشه شاید برحق حق باشه شاید نه شاید آخرتی باشه شاید آخرتی نباشه این کفر شک تردید سبب خارج شدن از اسلام از انواع کفر كف، نفاق که شخص به اسلام بکنه و اسلام رو اصلاً نگش داشته باشه اصلاً اسلام رو قبول نه از انواع نفاق اکبره بعد بغت رحمه من خدا میگه وعید الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها خالد مخلدا ترى جون هدفشون از فقط این بود که کشته نشن اینکه غنیمتی گیرشون بیاد هدفشون صرف دنیا بود این انواع كفر اكبر كفر دارين همون تا كفر اكبر دارين واذغر شرك اكبر دارين واذغر شرك الدعاء وقد ان در قران میگه من يدعو الله الها اخر لا برهانه له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافر شركه دعاء کسی در دعاش واسطه قرار بده بیاد سر قبر پیامبری ولی واسطه قرار بده یا بیاد مستقیما نزد اون ولی قرار در اون دعا برای خدا شریک قائل بشه نه مستقیما خودش از خدا بخواد این شرک شیه اکبر شرکش اکبر به سر زیارتی فای قبر ولی بیاد او را واسطه بین خودش و خدا خدا قرار بده الا میاد در بخت نواقض اسلام که اولی نوعی که اشاره میکنه هم دوها این شرک شرک دعا که نسبتا صریحه قران گوشاست شرک نیت من کان يريد الحیات الدنیا وزينتها نوفا اليه اعمالهم که از جمله شرک های بود که هدفش فقط دنیا بود نه اخرت از جمله شرکا شرک محبت و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین امنوا اشد حبا لله معبودات خودشون اولیای خودشون وثای خودشون رو از خدا بلکه مساوی خدا قرار می دادن. اونها شرکشون شرک اکبر بود اون قدر که از معبود خودشون از ولی خودشون می از خدا نمی کسی که میاد پای قبر ولی و بعد به عقب از اون کنار قبر میاد بیرون می ترسه از اون ولی،, ولی که شاید عقوبتش بکنه اون قدر که از اون ولی می ترسه از خدا ترسه، راحت انجام غیبت تر ولی که وقتی که میره پای قبر ولی با احترام با عزت با قربانی و با نمیدونم نقل و بادام میره و بعد اونجا سرش رو پایی میدازه و بعد عقب یا این نشانه ایشیه نشانیه بر تریدادنه اون ولی و اون واسطه بر تریدادنش بر خدا هرچکی قراره نه بحث تکدیر رو بعدا خواهیم کرد که شروط تو ذوابه داره ازن شركه اكبر شركه دارتاعات قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه التساوي بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله شركه دارتاعات كسي بيد دار حلال وحرام همتوا ك فرجوي دي خدامان دار قران بيفرمى يتخذوا ورهبانهم اربابا من دون الله رهبان علماء يخدشون النصاراء مدن خدا قرار ذلك خدايان قرار ذلك عديبن وحاسم تعيك النصاران يبدو من نزل رسول الله القفل يا رسول ما اتخذناهم أرباباً ونرى رب قرار مدن وخدا قرار مدن قال صلى الله عليه وليس إذا حرم ما أحل الله حرمتم وهمشين برافق قال نعم قال فتلك عبادة إن عبادتون هات إن اتاعتزون هات فهم مدرد خلاف شرع خدا حلال خدا رو حرام می‌کردن و هم چنین حرام خدا رو حلال می‌کردن این کارشون چیه شرک ساخت که خداوند اون رو به عنوان خدای دیگر را انتخاب کردن یاد می‌کنه همونطور که اینجا اشاره هست ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا رب قرار دادن اونجا اونجا که اشاره کردین میگه واتخذ الله صلی الله علی محمد